حالا نیم اینو میگه حاشیه اینو میگه که فعل مزاره زمانی که نونه نون بت... تحکید متشل به خودش چسبیده باشه مبنی هست مانند یزریبو که نون به با چسبیده ولی در سیغه یزریبانی که نون تحکید به اه... بعد زمیر میاد میگه این مبنی نیست. حاشی اینو میگه در دست قبلی که گفته بود. من که در... در توضیحات گفتم، در توضیحات گفتم که این که خیلی مزاره است. در سیره مصنا و در صيغه جمع مذکر و در صيغه مفرد مؤنث حاضر میگه مبنی نیست چونه نون تاکید بعد از چه اومده باید. بعد از الف بعد از وا بعد از یا اومده این در ماضی تو زیده من هفت چی میشه از خارج میشه بله المعرب من الافعال فعل های معرب فعل های معرب چی فعلی معرب بود فعل مزاره موراست بغیر از دجمه موننس و زمانی که نول تحیید دوله چستد این تشرق و شمس و القضا تو سه, سه نوع گروه از امسل رو آورده چرا؟ چون در حالت رفعش رو آورده حالت نصف رو آورده و حالت جزم شد چون موراست مرکو منصوب و بگزون میشه سه حاله که لیزه آورده است در قسمت اول تشرق و مرکوب است چون خالی از ناصب و جازم است یعدلونه هم مرکوب است ناصب و جازم هست در این مثلا هست اخذ و اثبات نومیه هست بله اما قسمت دوم و امسل رده قد بفرواید لن یفلحه منصوب است چون لن روش اومده ناصب هست الحصادو لن یسودو لن یسودو هم یسودو منصوب است چون لن روش اومده است فعل مضارع در این حالت ها موره را وصیرت دارد رفع ناس جاز و جاز لا تن هر صائل مجذوب الله له میشود دست لا تسع مجذوب است با حرف حسب الله لا, لا تسع ای صح یوجد لا تسع بله لا تسع است لا تسع نیست تصف با از مسعد گرفته تسع از سعا گرفته یعنی شتاب کردن لا تسع الا بالخير ما شتاب مگر در کار خیر پس لا تسع مجزوم است با حذف حرف عله چون فرقی تسع با تسع میبینید چیه تسع مثال هست اما تسع ناقص هست لا تقصروا في اعمالكم لا تقسروا مجزوم است علامت جزمش حصف حرف الله هست لا مجزومش کرده است که لای نه هست با نون, حصف نون. تقص... لا تقصیرو مجزوم هست اما علامت جزمش حصف نون هست چون تقصیرو جمع هست جمع ها چه موتل بصن. چه صحیح فرقی نمی کند در جمع علامت جزم حصف, جز حصف نون هست بله القواعد المعرب من الأفعال هو المضارع الذي لم تتصل به آخره نون التوكيد أو نون الإناث معرب از أفعال فقط مزاريه هسكه بآخرش نون التأكيد یا نون جمع ما الناس بده باشد يرفع فعل المضارع ذو الضمتي وتنوب عنها النون في الأفعال الخمسة فعل مزارع بازمه مرفومشه و نایب زمه میشه نون در افعال خمسه در یزربانی تزربانی یزربونه تزربونه تزربینا به جای زمه چه چی چیزی جایش میاد؟ نون و و اما در اصل با فتحه منصوب میشه و, انها و نون ه افعال خمسه اما در افعال خمسه یزربانی تزربانی یزربونه تزربونه،, تزربونه،, تزربونه در این افعال حذف نون به جای فتح می آید یعنی در این سیقه زمانی فعل پیل مزاره شد به جای فتح نون چی میشه حذف میشه. می یک به سکون پیل مزاره زمانی که مزاره می شه, شه. ساکن می گیره و یلو با انها حسف حرف, حرف الالتی في الافعال الموتلت الاخر و جانشین سکون میشه حذف حرف الالت در افعال الموتل الاخر و حسب و نون که افعال خمسه و در افعال خمسه چه باوتل چه غیر افعال نون حسب میشه را پس این بود قواعدی که یا افعال خمسه یا همین افعالی که منظور مسننه ها جمع مذاکر ها به اضافه مفرده موننسه حاضر این افعال خمسه هست. هفت ها هستن ولی چون تکراریان میگن پنج تا. اینا رو میگن افعال خمسه واحده متکلم واسه یان واحده متکلم جزء افعال خمسه نیست. وقتی مؤنث مفرد باشه. واحده متکلم جزء افعال خمسه نیست. Yes. Yes. افعال خمسه نیست جزید. جزید. جان yeah. yes, yeah. یان. و هست که بعضی‌ها مرکوم میشه با فتحه، بعضی میشه و با سکون مجهول میشه. با yeah. yes. بله. يعني بله رو میگن افعال خمسه همین رو میگن افعال چی خمسه, خمسه. خمسه. بله اونایی که نون دارن دو جمع که مبنیان بغیر اونایی که نون دارن میگن افعال خمسه پس این بحث شد الم من